بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد از جمعه نشانه های قیامت همیت دادن به دنیا و خصوصا ظاهر نگری و ظاهر اندیشی و همیت دادن به ظاهر خصوصا در بحث مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرما لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد هذه الروايه من اشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد اذن جنى نهايه قيامه بس فخ فروشي در ساختن مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم همشني فهمت ما امرت بتشييد المساجد وابا بن مس رضي الله عنهما ميقال اني تزخرفونها كما زخرفتها اليهود والنصارى همونطور که مساجد محل عبادت یهود و نسارا تبدیل شد به اون نقش و نگارهایی که روی در و دیوار, دیوار کلیسه هاشون و اون معابدشون انجام میدادن شما هم همونطور مثل اونها مساجدتون رو پر از زرق و و از رنگ و نقش و از این مسائلی که ذهن و سر نماز شاید مجگول بکنه میخواد چه فرش باشه چی میخواد دیوار باشه این فخفروشی هست این اهمیت دادن به ظاهره رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمانند یأتی علی ننس زمان و نیتبهونه بالمسجد لا يعمرونها الا قليلا فخفروشی میکنند به نسبت ساختن مسجد که کدوم یک زیباتر و قشنگتر از دیگری ساخته ولی اون امران آبادی که شر در نظر گرفته با نماز و عبادت ولی اون به نسبت اون اهمیتی کمی میدن لَيُعَمَّرُونَهَ إِلَّا قلیلا. یعنی اعمارش، آبادیش که آبادی مساجد با عبادت کمه مسجد جامعه صف میبینید یک صف، دو صف مسجد به اندازه ده هزار, هزار نمازگذاره ولی میبینید سر نفرم تعداد نمازگذاران نیست حادیث در این باب زیاده از عمر بن خطاب رضی الله عنه قبایت است اکن الناس من المطر و ایاک ان تحمر او تصفر فتفتن الناس مساجد میخواید بسازیم مساجد یه بسازید باران تو مسجد نیاد اما برحضر باش از اینکه دیوارها را قرمز یا زردش بگنید مرد... تا تا اینکه مردم در فتنه نیفتند، چون اینها اسباب فتنه اند شاید از سر نماز زنها مشغول بشه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان چه در حدیث آیش را درانها دارید صلى رسول الله صلى الله عليه في خميسه لها له له اعلام فنظر في اعلامه الى اعلامها نظره فلما سلم قال اذهب بخميصه هذه الى بجهم فانها الهتني انفا عن صلاته لباسه وجيده من راه راه بود خط خطی خط خطی خط روش بود یکم چشم رسول لباس بعد از الله سلام سر یک یک لحظه چشمش افتاد به اون راه راه لباس اون خط که روی لباس هست این اهمیت به عبادت اهمیت به اون چیزی که شرع احساس تشریع روی اون بوده احساس مثلا نماز و مساجد که گذاشته شده اساسش یک تا پرستی و عبادت خداوند یکتا هست این نمازی گذاشته شده هدف با خدا بودنه هدف این که خشوع از ارکان نماز خشوعه. چرا صحبت کردن در نماز ممنوع حرامه و نماز رو باطل میکنه چون خشوع رو از بندی داره چرا چپ و راست نگاه کردن سر نماز حرامه چون... چرا نماز رو باطل میکنه چون ذهن تو مشغول میکنه خشوع جز در هر کار نمازه حال انسان فریب زرق و ورق دیوار و فرش و این مسائل بخوره که سبب بشه ذهنش سر نماز به جایی که به آیات قرآن باشه ذهنش بر پرواز بکنه به این ور اون ور نماز که رسول الله صلی اللہ علیه میفهم و جعلت قررت و عینی به صلاح نور چشمانم در نمازه نماز نور چشمان رسول الله صلی اللہ علیه و سلم. من بارها گفتم و این بارم میگم و بازم خواهم گفت شب که به نماز مییستادن رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دنبالش میگشن توی این مسجد آیشه وقتی پیداش میکنه میگه چرا خود و عذاب میدی به نماز خرمیان می‌فرمایند صلی الله علیه و سرأفلا اكون عبدا شکورا بنده, بنده شاکر خدا نباشم شکر خدا و سپاس خدا و با خدا بودن خصوصا سر نماز اینکه انسان بدونه امام چی داره میخونه وقتی که بحث از اصحاب یمینه دلش به حال خودش بسوزه که اگر خداوند شاید او را شاید محروم بکنه از اصحاب یمین شاید از اصحاب شمال قرارش بده دلش به حال خودش بسوزه دلش مشتاق دیدار خدا بشه مشتاق بهشت بشه اصحاب یمین به گفته میشه دلش پرپر پر بزنه این خدا بار اله ها بهشت رو میخوام رضایتت رو میخوام این که با اصحاب رسول الله صلوات در سر نماز هر وقت بحث از بهشت میشد سر نماز از خدا بهشت میخواست عذاب بود پناه میبرد در اینه که قرآن میخون نه با صدای بلند یک کمی نقص میکرد بس خداوند بهشت میخواست میدونست چی میکنه ولی که ماها شاید از این جهنم و اوصاف جهنم انواع عذابها و شکنجه‌ها ها که شاید فردا گرام گرا، فردا ما خودمون دوچار اون بشیم فردا خودمون توی اون جهنم از اون عذابها و شکنجه‌ها ها ببینیم راحت از کنار اونها مرور میکنیم عبور میکنیم و با بی نماز و سلام بیدیم سلام علیکم و رحمت الله مثل که چیزی نشده در صورتی که خداوند تکی آیات کلمه به کلمه داره تذکر میده بهمون وقتی که بحث از جهنم میکنه بحث رحم خداوند در نسبت بنده بنده بدان اونجا اصحاب یمینی هستن اونجا اصحاب شمالی هستن بدان دنیا دنیای ابدی نیست دار فانی است می حق کلام خدا فکر کردین بیهوده است یا بیهوده خلقت شدیم فخلقناکم عبثه حبث بیهوده؟, بیهوده نیستیم روز قیامتی هست اولین چیزی هم که سوال میشیم نمازه اولین چیزی که روز آخرت سوال میشیم نمازه نمازمون چطور بوده بحث اهمیت به نماز خصوصا اینی که نماز جاهایی میبینیم کسانی همین قبل از نماز قبل از نماز عشایی که تماس گرفت گفت که نماز مغربم از من فوت شده چقد بده که انسان بی اهمیت باشه نسبت به نمازی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم می فرمایند بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاه بین الشرک و بین اسلام و ایمان ترک نمازه یک نماز رو تو ترک کردی مثل روزه رمضان رو در نظر بگیرید کسی یک روز روزه رمضان رو بخوره جایگزینی داره طول عمرش رو روزه میگیره جای اون یک روز خدا میشه سرپیچی بکنه شخصی از فرمان الهی من بارها قصه کعب مالک رو گفتم چرا تنبیه شدن چرا 50 روز رساس اصلا با این سه نفر کعب و هلال و مراره صحبت نکرد مگر جز این بود که یک تاعت و عبادت یک جهاد در راه الله رها کردند، یک بار بود سه نفرم بیشتر نبودند خودشون رو کم گرفته بودند اشتباه کردند زانو به زانی رسول الله صلی الله علیه و آله آمد نشاست یا رسول الله عذری ندارم از خدا ترسی فرار بکن از رسول الله از خدا کجا فرار بکنه مراقبت خدا داشتن اصحاب مبادیات بگیریم از اونها یک جهاده یک طاعته یک عبادته چی میخوام جواب خدا بدیم اون نماز صبحی که از خواب پا نشدیم بیدار نشدیم خاطر اینکه شب نشستیم پای موبایل چی میخوام جواب خدا بدیم آیا جواب پاسخی برای خدا داریم اینها حادیثی هست که بهمون همیت اهمیت نماز اهمیت طاعت را یاد میده خصوصا لقد کان لکن فی رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد قال لكم في رسال اسمه حسن برای شما در رسول الله صلی الله علیه و وسلم الگوی نیکی هست رسول الله صلی الله علیه و وسلم الگوی نماز خصوصا در نماز که این چنین اهمیت به نماز میدادن چون پیراهنش یک لحظه حواسش پر کرد نمیخواد دوباره اون لباس را بپوشه این اهمیت نماز این ان نور چشمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم که نمیخواد یک لحظه در نماز از خدا غافل بشه از جمله نشانه های قیامت قدم قدم گذاشتن پشت پای بو سنت‌های های غربی سنت‌های های اهل کتاب سنت های دیانت های دیگه و بی اهمیت شدن به دین و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: فرمایان لَتَتَّبَعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذبَ الْقُدَّةِ قدم بر قدم وجب بوجب در روایت حتی لو دخلو جحر الضب الا اگر سراق سوسمری وارد بشن شما هم میشید قدم به قدم شما راه اونها را میگیرید راه و مسلک اونها در اعتقاد راه و مسلک اونها در عبادت راه و مسلک اونها در رفتار در اخلاق اینها راهای سنت های امت های که گمراه بودن و خداوند آمد با دین اسلام ختم بر اون دیانت ها داد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دل سوز امتش وقتی <تصفح> گفتن یا رسول الله این سنت‌های امت‌های گذشته که ما پیرویشو می‌کنیم کی هستن فرس روم فرمودن وقتی از امت‌ها غیر از, از اینام یه کسی دیگه هم هستن یعنی غیر از اینها خصوصاً این منظور شما پیروی از این دو تا امت خواهید کرد فرس و روم جشن تولد بگیر از این آداب ها رسم و رسوم رسم رسوم جاهلیت شق جیوب پیرهن پاره کردن اثر و سینه زدن در عزاداری ليس منا مشق الجيوب ولطم الخدود احسر و صورت زدن نه سنت های امت های زرتشت و نصرا و دیگر ادیان بوده که امت اسلام انجام میدن رفتارها زیاده رسول الله صلی الله علیه و سلم از قذا نهی میکنه از اینکه موها داره بر تراشیده بشه فقط اینجا مثل یک قارچی گذاشته بشه ولی که ببینید تو کوچه و خیابان برید ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم همین خداون در قرآن به زنان میگه التبرج نتبرج الجاهلیت الاولى تبرج نکنید زن میبینید ده قلم آرایش کرده از چش گرفته و دهان گرفته و سر و صورت گرفته و اون موها گرفته تبرج جاهلیت کفر تبرج اهل شرک، اهل معاصیات، خودش معصیت بجاش و پیروی از سنت‌های اونها طرفی نگیرید. نه تبعاً سنن من کان قبلكم. هم راه ها و رفتارهای امت‌های گذشته، شما هم پیشی خاطر گرفت. روزی رسول الله صلی الله علیه و بحث و ختم می‌دم با این حدیث. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلام داشتن می اومدن از جنگ حنین اصحاب تازه مسلمان همراه رسوله صلی الله علیه وسلم بودن خودشون میگن ما تازه مسلمان بودیم از کنار درختی عبور می کردیم دیدیم پارچه های شمشیر های اسلحه به اون درخت آویزه بعد گفتیم یا رسول الله اجعل لنا ذات و انواط کما لهم ذات و انواط برامون درختی قرار بده که همینطور بهش آویز بکنیم اسلحه هامون بهش هامون بجویم. این ذات و انباد همینطور که اینا مشرکین درخت دارن برای ما این چنین درختی قرار بده تبرک بهش بجید رسول الله صلی الله علیه وسلم خشکین میشن و میفرمون والله لقد سألتم كما سأل بنو اسرائیل موسی اجعل لنا الهن كما لهم آلها قسم میخورم چنام چه بنو اسرائیل بعد از نجاتشون از دریا و از دست شکنجه های فرعان همون چیزی که بعد از نجاتشون خواستن از موسا وقتی که از کنار درختی عبور شدند عبور و گفتن برای بر ما همچنین درخت متبرکی قرار بده شما همچنین چیزی از من میطلبید والله لقد سألتم از من دارید میخوای اون چیزی که بنو اسرائیل از موسا طلبیدند بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید والله لا تتبعن سنن من كان قبلكم بلقدر بلقدر. قسم می کنم که سنت امت های پیشین را شما باز دوباره انجام خواهید داد بله انجام میدیم. داریم انجام بیدیم هستن درختان متبرکی زیارت های متبرکی اون پارچه هایی که آویز می کنن اون لباس هایی که آویز می کنن توی خیلی از خانه ها بر سر گهواره ها از اون پارچه ها می زارن خیلی از بچه ها تو کوچه و خیابون می بینید یا بر فرمان ماشینشون رای روی بازشون بستن ان تما ایمه ولت ت این تمیمه است و تمییم هم شرکه چنان چه رسول الله صلی الله علیه و سلام می حالیکن امت اسلام اهل اسلام چون غافل شدن از حقیقت دین اسلام از هدی رسول الله صلی الله علیه و سلام اصحاب رسول الله صلی اللہ علیه و سلام راهی امتای پیشین را گرفتند چه در بحث عقیله گفت در بحث رفتار من فقط اینجا مثال زدم مثال ها زیاده اون مثال های خرافات جاهلیت زیاده از تطیر و تشاوم ها پنج میمسافرت نری و شنبه کسی پیشت نیاد و نمیدونم ناخن شب چهارشنبه نچین و نمیدونم فلاک سو نمیدونم بوری به طرف فلانی نباشه به طرف دعوا میشه و نمیدونم کلید به هم نزن و اینا همه شرکه. اینا طیرت شرک ان الطیره شرک تایر و تایر شرکی چقدر از این خرافات های شرکی که از آثار جاهلیت و اهل شرکه چقدر در ماها هستن خداوند ما هست؟ را نجات بده ابراهیم علیه السلام میترسیدن از شرک از باب علما باید بترسین چنانچه گفتن ابراهیم و از خدا لبیدن و جنونی و بنی ان نعبد الاصنام را من و فرزندانم را اس شر مجاد بده پروردگارا ما را ما را از شرک و نجات بده و الله على محمد و علی آل محمد